اما نقطه دیگر اجتماع شرط و قسم اجتماع شرط و قسم اگر یک ای هم شرطیه بود هم قسمیه شرط و قسم درش وجود داشتن اینجا چی پیش میاد؟ دقیقی داشته باشید داشت شماره اجتماع الشرط شرط و این بحث خیلی طولانی شد حفظ و شرط و الجواب بله اجتماع و شرط و القسم این اتقنت العمل و حقی که اضاعف لکل میبینیم که اینجا هم شرط هست و هم چی؟ قسم ولی اینجا شرط قبلش اومده یا قسم؟ شرط این بله پس اینجا دقیقه کنید؟ ان اتقنت الامل و حقکا و ضاعف و که جواب هست چون ببینید چرا این بحث آورده؟ خاطر که شرط هم جواب دارن قسم هم جواب دارن هر جو تا جواب دارن حالا ما این جوابه رو برای شرطه حساب کنیم یا برای قسمه این بحثو امروز میخواد برای توضیح بده که اگر مثلا ال حضرت رابی مثلا شما مولید ترکیب کردید گفتید این, این شرطی هست اتقنته فعل مزاره هست جواب هست چی شرط هست عمل مفهولون بیه هست و حقیقه خب این که قسمه و جواب هست ولی جوابه و حقیقت هست که قسم یا جواب شرط هست این نقطه رو میخواد امروز برای شما توضیح بده که ما این جواب رو برای فیرومی که حساب کنیم خوش شرط و قسم در یک جمله جمله شدن هر دوتا تو جمله اومده بعدش یه جوابی اومده اون جواب بالا کدومی که این دوتایه هر دوتا نیاز به جواب دارن شما اگه تابهل نشیدید که قسم جواب داره و تیلی و زیتون و توری سینین بعدش دیگه چی؟ و حاضر بلد بعدش بله این شد جوابش این شد چیش؟ جوابش قسم میشه جواب داره مثل شرط حالا میگه اگر هم قسم اومده بود تو جمله هم شرط اومده بود جواب مال خودو میگه مثلا اضاعف که میگه چند حالت داره بخاطری امتحان زیادی آورده. سه مثال اول و جرده کنیم. سه مثال اول و جرده کنیم. جواب مال شرط هست. جواب مال چیست؟ اضاف تشفه و تندم که درس مثال اول آورده. این اگرانت العمل و حقیک لك لک ال آذ. این تبعت نصحت طبیبی. و تشفه. تشفه جواب شرط هست. جواب ین هست. میبینیم این درست تشفه بوده است. حرف الله هست شده این صحبت الاشراره و تندم تندم هم مدیون هست جوابه این هست دیگه جوابه و والله و حقیقه نیست قسم جواب نیست دقتی داشته باشید اما اشراره چار بعد یعنی چار اینجا قسم قابل ببینید اونجا شرط اومده بود در هر اولی اول شرط اومده ان, ان, ان, ان اتقنت این که جواب مال که پس جواب مال چون همونی اول جواب مال مثال هم دقت کنید اینجوری است وحقك ان لا ضائفنا لا روی جواب قسم لا میاد لا اگر ما ایلو جواب این قرار می میشد می شود لا اضاعف لکا الاجر می شود با زم ولی این لا اضاعفن لجواب و حقی که جواب قسم هست چرا؟ فرق قسم اول اومده کدوم اول اومده؟ و حقی که این اتقنت الامل لأضاعفن لکا الاجر والله این اتبعت نصح تبیبی لتشفیان می بینید که؟ جواب ایلو قسم هست وا ابيك ان سحبت الاشراره لتندمان فالمثال الاولي جون شرط اول اول اومده جواب مال كلوم بود مال شرط مش سب بعدي جون قصر قبل الشرط اومده بس جواب مال كلوم هست اما في المثال بعدي لو دقيقه اخوك ان اتقن العمل وحقك اضاعف لك الاجر او لاضاعفها لك هر دو تا جایزه. اینجا میتونیم جواب و مال شرط قرار بدیم و میتونیم مال چه قرارش بدیم. مال قسم قرارش بدیم. هر دو عرب چه؟ جایزه. انت والله الا تبعت نصح طبیبی تو شف او لا میتونیم تو جواب و مال قسم قرار بدیم و میتونیم مال چه قرارش بدیم. مال شرط. این شرط همون اون شفای بله حسن. انکه و آبیک امشحت ال تندم او لتاندامان انجا چرا دو حالت جایزه به خاطر اینکه به خاطر اینکه اگر قبل از دقتی داشته باشید در قید او البته دل توضیح می‌کنیم اگر قبل از این دوتا یعنی قسم یا شر کلمه اومده باشه که اون کلمه نیاز به خبر داشته باشه مانند اخوکا و انتا و اناکا اینا نیاز به چی دارند؟ نیاز به خبر دارند. اخوکا، اخو مقتدای خبر نیاز داره. انتا، مقتدای خبر نیاز داره. انکه که اسم انه هست نیاز به خبر داره. میگه اگر قابل از این جمله شرطی یا قسمیه کلمه یومده بود که نیاز به خبر داشت در این حالت جائز است که ما جواب رو؟ باله برا هر ایک زندوتا؟ قرار بدیم قاعده دقت کنید اذا اجتمع شرط و قسمون زمانی که شرط و قسم با هم تو یک جمله اومده بودند فالجواب لسابق من جواب مال همونی که اول اومده مانند شش سال اول در ستا اول شرط اومده بود پس جواب مال شرط بود در ستا بعدی اول قسم اومده بود پس جواب مال قسم بود فا تقدم علیه ما يحتاج الى خبرین اگر قبل از این جمله کلمه اومده بود که میازه به خبر داشت جاز این یکون الجوابو او این جائز است که جواب مال سابقه باشه یا لاحقه اونی که بعدش اومده است این هم خدا رشتوک به این صادقی رد شد ومالله سحیل هم می‌گید نشود بریم جلوتر درس عدیر رو جداگانه ضبط کنیم بهتر است